ساعت ده شب، دوباره سوار تانک های خود شدیم و در هوای شرجی سپتامبر به سوی لامرزدورف حرکت کردیم. وقتی به شهر رسیدیم، با خدمه تانک خداحافظی کردیم. آنها هم چند قوطی کنسر و چند بسته بیسکویت که بعدا نام آن را کیک سگی گذاشتیم به ما هدیه دادند. با رزوی پا و گردن شکسته که به زبان آلمانی مترادف سفر به خیر است، جاده اصلی را در دل سیاه شب پیش گرفتیم. به علت تاریکی مطلق هیچ چیز دیده نمیشد. در نتیجه، اینگامی که دو نفر اونیفورم پوش بلند بالا حدود 180 سانتیمتر ناگهان جلوی ما را گرفتند، به شدتی که خوردیم. ایست! گشتی دشبان! گشتی دشبان بود که اوراق شناسایی ما را می‌خواست. از ما پرسی چطور وارد این منطقه شده اید؟ چه کسی شما را سوار کرده؟ و پرسشهایی از این دست؟ برای چند دومین بار داستان خود را تعریف کردیم و گفتیم که در واقع دنبال همشاگردی های خود در مدرسه واگر هستیم که چند روز پیش آنها را گم کرده ایم. چند روز پیش تعدادی پسر بچه از اینجا گذشتند احتمالاً به طرف آیس کرشن می میرفتند خب چگونه میتوان به اویسکرشن رفت؟ شاید بتونید سوار یکی از کامیونهای های بشید؟ چطور میشه مسئولش رو پیدا کرد؟ ما ما بیاید شما را راهنمایی میکنیم. حقیقتش رو بخواید شما بچه باید الان خوابیده باشید. حق با شماست دنبال سربازها ها راه افتادیم و پس از راه راهپیمایی کوتاهی به ساختمان بزرگی رسیدیم. رنگ ساختمان در تاریکی قابل تمیز نبود اما ظاهرا شبیه مدرسه بود. دمه در نگهبان جلوی ما را گرفت اما با دیدن گشتی دژمن راه را باز کرد. وسیعی که وارد آن شده بودیم با اشباح سیاهی از کامیون‌های قراضه پر شده بود یکی از این اشباح با سر و صدای زیاد خود را از توده تاریک جدا می‌کرد ها مقصد راننده را پرسیدند گموئند بسیار خوب فعلاً تا اونجا برید بعد از اونجا می‌تونید ماشین دیگه ای سوار راننده در حالی که به سختی دنده ماشین را عوض می‌کرد فریاد زد زود باشید به پری پرید عقب کامیون از ها تشکر کردیم و پریدیم بالا باور میکنید کامیون پر از توشک بود چه درد سرتان بدهم همانجا روی وا رفتیم وقتی از خواب بیدار شدیم دیدیم کامیون ما در محوطه‌ی زیر نور خورشید توقف کرده و آشیرها دارند وضعیت سفید را اعلام میکنند از قرار معلوم عملی هوایی انجام شده بود یکی از سربازان آتشبار ضد هوایی مستقر در محوطه به طرف ما آمد. با تعجب پرسید: چرا شماها به پناهگاه نیامدید؟ ما توی این عالم نبودیم. بابا دست خوش، واقعا عجب اعصابی دارید. پشت سر او سرباز دیگری آمد. راننده بود. از او ساعت را پرسیدیم. در نهایت تعجب دریافتیم که ساعت سه بعد از ظهر است. او گفت: مدتی که بگه ما این رسیدیم ولی از بس خسته بودید گذاشتم حسابی بخوابید اما حالا دیگه بر تو ها تحویل بدم و به لامرزدورف برگردم با تشکر از آن همه محبتی که به ما کرده بود پیشنهاد کردیم که در تخلیه ی کامیون به او کمک کنیم شاد و سر حال توشک شکر را به زیر زمین ساختمان بردیم و در اتاق مناسبی انبار کردیم راننده ی کامیون ظاهرا خیلی خوشحال بود چون بعد از پایان کار ما را به شهر برد و در باشگاه سربازان برای هر کدام از ما قضای سفارش داد که اگر چه چنگی به دل نمیزد، اما از هیچ خیلی بهتر بود. ضمن راه درباره خرابی ناشی از بمباران ها صحبت میکردیم. بسیاری از خانه ها ویران شده بود و بعضی خانه ها هنوز در آتش میسوخت. ماشین های آتش نشانی بیوقفه تلاش میکردند. من خود عمق فاجعه را به چشم دیده بودم. در سالن غذاخوای دوس سرواز ما به یکی از رفقایش برخورد که او هم راننده بود. پیشنهاد کرد که شبانه ما را با کامیونش به اویس کرشن ببرد. شانس دیگری به ما روی آورده بود. یا ما اینطور فکر می کردیم. بقیه ساعت بعد از ظهر را در استراحتگاه پادگان گذراندیم. در آنجا مبل راحتی بود که هم برای ورق بازی و هم برای چرت زدن خیلی مناسب بود. شپنگام گمائن را به سوی آییس ترک کردیم. در این کامیان از آرامش شب قبل خبری نبود. این به آن در. گودال هایی که در اثر بمباران های شب قبل در جاده به وجود آمده بود، حسابی ما را ناراحت می کرد. کامیان وقتی از روی گودال های کوچک می گذشت، لغ لغ می خوردیم ولی هنگام عبور از گودال های بزرگ، تکانها چنان شدید بود که از یک طرف اتاقک ماشین به طرف دیگر پرتاب می شدیم. هنگامی که به رسیدیم، همه بدنمان درد رس اما خوشبختانه همه سر جای خودشان بودند اگر این را خوششانسی بدانیم، درست پس از اینکه از کامیان پیاده شدیم آژیرها دوباره به صدا درآمدند در جاده به دنبال چند نفر به راه افتادیم تا اینکه به پناهگاه عمومی بزرگی که درست وسط یک میدان ساخته شده بود رسیدیم به دیوارهای مرطوب سیمانی تکیه دادیم و منتظر ماندیم بیشتر افراد پناهگاه را زنها تشکیل میدادند پیرزن‌های غرغرو، ایرادگیر و زنان جوان که بچه های خود را بغل کرده بودند. یونیفرم ما ابتدا باعث وحشت و تعجب آنها شد. اما وقتی چشمشان به تاریکی عادت کرد و تشخیص دادند که ما فقط پسر بچه های کوچکی هستیم، طوری مادرانه با ما رفتار کردند که به ضربه ناگهانی و انفجار بمبی که دیوار پناهگاه را لرزاند، اعتنا کردیم. با شیرینی، میوه کیک و ساندویچ از ما پذیرایی کردند. آنها حتی با اصرار از ما خواستند جواب های پاره ما را وصله بزنند. حیف که ما نمی محبت آنها را بپذیریم. چون جورابهایی که در کوله پشتی خود داشتیم چای برای سوزن زدن نداشت. ما به جای جوراب تکه پارههایی از پارچه کتانی به دور پاهای خود میپیچیدیم. رفتار آنها مرا به یاد مادرم میانداخت. سه هفته بود که نامه از او نداشتم. با نگرانی به فکر افتادم که در اولین فرصت تلگرافی برای او بفرستم. یک نفر جگ گفت. هیتلر، گوبلز و گورینگ با یک مرسدس بنز بزرگ از خرابه های برلین می گذشتند. هیچ کس به اونها اتنایی نکرد. هیتلر گفت. چیز است. فکر می کنم بهتر است پیستم و جست فرماندهی به خود بگیرم. این حقه کار خودش را خواهد کرد. هیتلر خشک و جدی به حالت خبرداری ایستاد ولی هیچ کس اعتنای هم به اون نکرد. گورین گفت، صبر کنید، الان همه مدالهایم را به سینه نصب کنم، این مدال ها هم شهری های را به هورا کشیدن و تشویق وامی دارد. به منظر گورین رفتن، او لباسش را عوض کرد و اونیفورم پاکیزه سفیدی با تمام مدال هایش پوشید. دوباره سر تا سر را با مرسدس بنز پیمودند، اما انگار پ هیچ کس اعتنایی به اونها نکرد و گوشه چشمی هم به آنها نینداخت هیتلر گفت: « عجب باور کردنی نیست؟ فکرش را هم نمیکردم. گورینگ گفت: 'قربان بنده پیشنهاد می کنم عوامر جدیدی صادر بفرمایید. ظاهرا ظرف و برق مدار من چشم کسی را خیره نمی کند. <تصفح> گوبرس که تا آن لحظه خود را کنار کشیده بود نیش خندی زد و گفت قربان بنده کلک کار را میدانم. شما فقط ماشین را کنار جدول پارک کنید. بقیش با من. هیتلر دستور داد اتومبیل را کنار جدول پارک کنند. گوبلز پیاده شد و لنگ لنگا به طرف عقب ماشین رفت و پس از چند لحظه دوباره سوار شد و به راننده گفت: "زود حرکت کن." <تصفيق> به محض که راه افتادن، شهر یک پارچه شور و هیجان شد. حتی سر و خورشید هم از لابلای ابرها پیدا شد. به زودی تمام مردم برلین بر بالای خرابه ها و یا کنار پنجره های خرد و خراب خود جمع شدند و با صدای بلند هورا کشیدند. هایل <تصفيق> هایل هایل سر سرجالی هواپیماهای نیروی هوایی انگلیس هم در آسمان پیدا شد و به جای بمب یا به گویه های وزیر تبلیغات را فرو بارید. هر کس که دهانی داشت هورا کشید. گورینگ با لبخندی در صندلی خود لم داده بود و با آستین و کتش مدالهایش را برق میانداخت. هیتلر با ابهت تمام دست خود را بالا نگه داشته بود. تنها گوبلز بود که عقب ماشین کس کرده بود و جوم نمیخورد. <تصفيق> سرانجام زمانی که به خانه برگشتند، هیتلر و گورینگ گوبرز را در چگونگی این موفقیت سوال پیچ کردند. گوبرز پاسخ داد، پیشوای من، آدی ترین درجه نظامی، به همان سادگی بود که عرض کردم. رفتم عقب ماشین و با حروف درشت نوشتم، ما به درک واصل می شویم. <تصفيق> <تصفيق> شوخی و لطیفگوی در پناهگاه زده حمله هفایی، سال 1944. وضعیت که سفید شد سپیده زده بود دوباره پای پیاده خیابان‌های سوخته و مه گرفته را در پیش گرفتیم این بار مقصدمان ایستگاه راه آهن بود گشتی‌های ارتش در طول راه سه بار ما را بازرسی کردند در ایستگاه راه آهن حدود نیم ساعت با نگهبان سر و کله زدیم تا بالاخره قانه شد که آدم‌های خطرناکی نیستیم و به ما اجازه عبور داد سالن انتظار پر از افراد نیروی زمینی بود اددای روی زمین خوابیده بودند، ادای ورق بازی می خواهر خاور هم با آنی فرم مخصوص سلیب سرخ، بی انتناب های رکی که سربازان محرومیت کشیده، فنجان ها را از مایع قهوه رنگی که فقط شباهتی به قهوه داشت پر می کرد. برای پرسجو کردن درباره قطار مورد نظر هنوز خیلی زود بود. آخرین قطار دقایقی پیش ارکت کرده بود. و از دولت سر دشمنان، تا شب قطار دیگری هم در کار نبود طبق روال سربازی روز را در کسالت ناشی از انتظار بیپایان سپری کردیم یکی از افسران اطلاعاتی به ما خبر داد که در ساعت 8:3 قطاری به مقصد کوبلنز حرکت خواهد کرد سرانجام به خانه‌هایمان برمیگشتیم هایمان را بررسی کردیم کوبلنز محل ایده‌آلی بود که از یکدیگر جدا شویم و هر کدام شهر را دیار خود برگردیم سعی کردیم با خواندن سرود بازگشت یک نواختی زمان را بشکنیم هیچ یک از سربازانی که در سالن انتظار بود حرفی نزد. آنها فقط به ما خیره شدند و ما هم بلافاصله سرود را قطع کردیم و به سکوت سنگینی که همه جا را فرا گرفته بود برگشتیم تعجبی نداشت از خستگی به جان آمده بودند آنها هم مثل ما میخواستند به خانه هایشان برگردند در آن طرف سالن روبروی ما سربازی چون باطمه روی زمین نشسته بود و سر خود را میان بازوانش فرو برده بود. اول فکر کردم خابیده است، اما گهگاه سرش را کمی بلند می کرد و دستکی نگاهی به اطراف میانداخت. و دوباره سر خود را میان بازوانش فرو می برد و خودش را به خواب می زد. فرم نیروی هوایی به داشت و احتمالا جزو یکی از لشگرهای پیاده نیروی هوایی بود. رفتارش مشکوک به نظر می رسید. شارکوف ورقهایش را در آورد و دوباره برای پرداخت صورت حساب قضا و پول هایی که به یکدیگر دیگر بدهکار بودیم، مشغول بازی شدیم. یک نفر هم با سازدهنی آهنگ شادی را می نبخت. توجه! کنترل. دو سرباز بلنقده اس اس وارد سالان شدند و با آمدن آنها همه دست و پای خودشان را جمع کردند. آماده برای کنترل. آنها اوراق همه از جمله ما را وارسی کردند. گرچه اجازه مسافرت نداشتیم ولی ایرادی نگرفتند. سپس به طرف سرباز هوا برد که خوابیده بود رفتند و اوراق هویتش را خواستند. ظاهرا حرف آنها را نشنید. یکی از اس اس ها با نک چکمش به پهلوی او زد. سرباز چشمش را باز کرد بس اس اس ها مجددا اوراق او را خواستند. سرباز به آرامی از جای خود بلند شد و در حالی که می کرد میکرد میخواهد اراغش را از جیبش درآورد ناگهان اسث اس ها را هلداد و به طرف پنجره دوید پنجره تکه تکه شد ولی سرباز نتوانست از آن بکسرد در حالی که لابلای شیشه و قاب پنجره گیر کرده بود سعی کرد خود را رها کند اما اساس اس ها او را پایین کشیدند دستهایش را به پشت پیچاندند و کشان کشان از سالن انتظار بیرون بردند او خیلی جوان بود شانزده ساله به نظر می رسید اما در چهره جوانش مانند یک مرد ماسن چین ها دیده می شود. فریاد می زد بلم کنید بلم کنید مادر مادر جان ناگهان لیوان آبجایی روی کلا یکی از اس اس ها خورد شد سرباز ناشناسی از بین جمعیت فریاد زد اس اس کسافت لجن بلش کن در حالی که یکی از آنها زندانی را با خود می برد، دیگری برگشت دوباره سکوت همه جا را فرا گرفت. آنها از هیچ شیطانی به اندازی اس اس نمی‌ترسیدند. کاری نکنید بلایی که سر این ترسوی فراری اومد سر شما هم بیاد. برگشت از سالن خارج شد. سربازان درباره این مسئله به بحث پرداختند. ادعای مخالف سرباز فراری بودند، اما اغلب آنها با او هم دردی می کردند. یکی از آنها که سن و سالی از او گذشته بود و ریش بلندی داشت، گفت: به خدا قسم اگه من زن و بچه نداشتم و یا خیالم از بابت اونها جمع بود مدت ها پیش فرار کرده بودم کاشکی همون موقع که در سال 1942 مرا به یگان اعدام در لهستان اعظام کردم فرار میکردم اگه فرار کرده بودم اون همه یهودی به دست ما کشته نمیشد. نه اینکه اونها رو دوست داشته باشم اما خب بیشترشون زن و بچه بودند از اون به بعد من یک خواب راحت نکردم یک نفر وسط حرفش پرید حقته دیگری گفت احمق تو دیگه خفه شو اینجا پر از گوشای نامحرمه من شک دارم حرفایی که متفقین از رادیوهاشون پخش میکنن یا توی اعلامیه های تبلیغاتیشون مینویسند حقیقت داشته باشه من حتی نمیدونم دموکراسی چیه اونم فریبی شبیه این یکی مونتها دی دیگه دیگهای اجراش میکنم ما با گلوله میکشیم اما اونا به تدریج حسابتا میرسن. جوری که هم متوجه نمیشی حتی برای این کار تشكرم میکنی و چون میتونی تشکر کنی راحت میمیری و فکر میکنی انسان آزادی هستی احمقای لعنتی چرا خفه نمیشید هنوز بحث ادامه داشت که ناگهان صدای شلیک چندین گلوله همزمان از خارج شنیده شد ما رفتیم بیرون ببینیم چه اتفاقی افتاده است فراری جوان را کنار دیوار توالت عمومی تیرباران کرده بودند ساعت نه شب با رسیدن لکوموتیو سنگینی که چند واگن مسافر بر را یدک میکشید جنب و جوش خاصی پدید آمد لکوموتیو از واگان جدا شد و ایسگاه را ترک کرد و دقایقی بعد چند واگن دیگر را همراه آورد هنگامی که قطار ما را به لکوموتیو بستند فرمانده ای ایسگاه که نسبتاً چاق و چاققت کوتاهی بود وارد سالن انتظار شد قطار کوبلنز تا چند دقیقه دیگه ارکت میکنه اوراق خود را آماده کنید سربازها مثل مور و ملخ به طرف دروازه های خروجی هجوم آوردند از بازرس های ارتشی جلوی درها کاری ساخته نبود و خودشان هم میدانستند ما آنها را حال دادیم و گذشتیم و وقتی به روی سکو رسیدیم به دوستانم توصیه کردم که به قسمت عقب بروند. و هر طور شده در آخرین واگن جا بگیرند هر از لوکوموتیو دورتر باشیم بهتر است هر وقت جنگنده‌ای بمب‌افکن‌های متفقین به قطارها حمله میکردند، اول سراغ لوکوموتیو و واگن چسبیده به آن میرفتند و آن را به مسلسل میبستند. به هر حال بهترین کاریم بود که به آخرین واگن برویم ضمناً وقتی چنین اتفاقی میافتاد به سرعت میتوانستیم واگن را ترک کنیم و از قطار فاصله بگیریم جدا تعجب می کنم که چرا مردم این موضوع را نمیدانستند؟ حتی سربازان با تجربه هم از این قضیه بی خبر بودند. در انتهای آخرین باگان کوپه مستقلی پیدا کردیم. همانی بود که میخواستیم. وسایلمان را روی محل چمدان ها انداختیم و در یک چشم به هم زدن روی صندلی‌های نرم و راحت ولو شدیم. سکوها پر از سربازانی بود که سعی میکردند سوار قطار شوند. اما هیچ کس به انتهای قطار پیش ما نمی آمد. شاید کوپه های دیگر باید ابتدا ظرفیتشان تکمیل میشد. تازه داشتم توجه همسفرانم را به این موضوع جلب می کردم که ناگهان قطار از جا کنده شد و در امتداد سکوها به حرکت درآمد. ما داشتیم به خانه برمیگشتیم. این اولین باری بود که معنای بازگشت به خانه را با تمام وجودم حس می کردم. شادی میکردیم فریاد میزدیم با دست به شانههای یکدیگر میکوبیدیم ما داشتیم به خانه برمیگشتیم ناگهان قطار با صدای گوش خراشی ایستاد از بیرون سر و صدایی به گوش میرسید در کوپه را باز کردم و به روی سکو رفتم مرد خپلهای داشت سر فرماندهٔ ایستگاه داد میکشید او انیفرم مخصوص رهبران سیاسی به رنگ خردلی مایل به قهوهای بهتن داشت فریاد فریادهای یک افسر اساس اس و جیغ و دادهای هیستریک یک زن و دو بچه هم که از قرار معلوم اعضای خانواده ای او بودند همراهیش میکردند آنها سعی داشتن سوار قطار بشوند ولی سربازان درها را باز نمیکردند و فریاد میزدند ظرفیت تکمیله افسر اساس اس ما را دید من بیدرنگ به داخل کوپه برگشتم و در کوپه را محکم بستم حیف که دیر شده بود اول صدای قدم های سنگینی به گوش ما خورد و بعد ناگهان در کوپ باز شد. افسر اس, اس در آستانه ای ایستاد چه کسی آنجاست؟ در جواب گفتم ما با تندی گفت بیایید بیرون ما از کوپ خارج شدیم برگ مأموریت دارید؟ نه در حالی که هر کلمه را با لحنی استحزا آمیز میکشید؟ و دستهای های پهن و کلوفتش را تکان میداد با لحن مسخره گفت که اینطور پس برگ مأموریت ندارید و ادامه داد که ندارید، جالب است، واقعا که خیلی جالب است و ناگهان در حالی که صدایش را تا حد اربده بالا برده بود، فریاد زد و شماها که اونیفورم پیشوار را به دارید فرار میکنید ها؟ بده هم تیر بارانتان کنند؟ در حالی که جا خورده بودم گفتم ما شاگردان مدرسی آدال در کوبلنز هستیم برای انجام مأموریت به واگلسانگ اعزام شده بودیم و حالا داریم به جای اولمان برمیگردیم ما سرباز نیستیم میبینید که هنوز به سن سربازی نرسیدیم مرا که میبینید فقط سیزده سال دارم سیلی محکمی به صورتم زد و گفت دروغگوی پس فترت تو میگویی فقط سیزده سال داری، اما حیکل گندت خلاف این را میگوید. در نهایت بیچارگی گفتن، بفرمایید، این شناسنامه هم قربان. نیازی به این کاغذ فاره ها نیست. خودم چشم دارم میبینم. یلا، وسایلتان را از داخل کوپه بیا بیرون؟ داخل کوپه رفتیم و کول پشتی های را روی سکوی خالی و کم نور پرتاب کردیم. بعد همگی از کوپ بیرون آمدیم و دوباره در حالی که از ترس میلرزیدیم به صورت دسته کوچکی کنار هم ایستادیم. گویی از ترس به یکدیگر چسبیده بودیم. مردک با پسر بزرگش خداحافظی کرد و پیش از آنکه همراه با دو پسر کوچکش وارد کوپه شود، زنش هم او را بوسید و روی پیشانیش صلیب کشید. نگهدار سوار قطار شد و قطار بیدرنگ به راه افتاد. افسر اس اس به طرف ما برگشت خیلی خوش خیال هستید آلمان در حال جنگ است. آن وقت شما فسقیلی ها خیال میکنید میتوانید توی دامن مادرهای خود قایم شوید حال میفهمید فرار یعنی چه همین الان وسایرتان را جمع کنید و با من بیایید دوباره کول پشتی هایمان را برداشتیم و دنبال او راه افتادیم در جلوی ایستگاه شبه تیره کامیون ها را دیدیم و جلوی یکی از آنها ایستادیم. افسر دستور داد: بپرید بالا. دست‌های امداد از کامیون بیرون آمدند و ما را به داخل کامیون کشیدند. سربازان مسلح بودند. یکی از آنها مشعلی را جلوی صورت ما گرفت. صدایی از دل تاریکی بلند شد. آه خدای من، فکر می‌کنید به کجا دارید میروید؟ یکی از بچه ها به گریه گفت: میخواستیم به خونه برگردیم؟ و باز اشک از گونه های ما سرازیر شد. همان صدا گفت بسیار خوب، راستش رو بخواید اونجا که ما میریم جز باران گلول خبری نیست. بهتر پیاده شید و سوار ماشین دیگه ای بشید. در همین لحظه دوباره سرکلی افسر اس اس پیدا شد. از بالای دیواره ی اتاق کامیان نگاهی به داخل انداخت که ببیند ما آنجا هستیم یا نه؟ به سربازی که دم در نشسته بود اشاره کرد و گفت مسئولیت این بچه با توست میخوام وقتی به آخر رسیدیم دوباره اونها رو ببینم بنابراین داشتیم به آخر میرفتیم با آن مسافرت فکر فرار به پایان رسید